اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تقولن إليهم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 دوسرون الیهن بالموده وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن يفعلوه منكم فقد ضل سواه السبيل به نام خداوند بخشنده بخشایشگر ای کسانی که ایمان آورده اید دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید شما نسبت به آنان اظهار محبت میکنید در حالی که آنها به آن چه از حق برای شما آمده کافر شده اند و رسول الله و شما را به خاطر ایمان به خداوندی که پروردگار همه شماست از شهر و دیارتان بیرون می رانند اگر شما برای جهاد در راه من و جلب خوشنودی هجرت کرده اید شما مخفیانه با آنها رابطه دوستی برقرار می کنید در حالی که من به آنچه پنهان یا آشکار می سازید از همه داناترم و کس از شما چون این کاری کند از راه راست گمراه شده است ينثقفكم يكون لكم اعداءا ويبسقوا ويبسطوا اليكم ايديهم والسان بالسوء وود وود لو تكفرون اگر آنها بر شما مسلح شوند دشمنانتان خواهند بود و دست و زبان خود را به بدی کردن نسبت به شما میگشایند دوست دارند شما به کفر بازگردید لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت بینکم والله بما تعملون بصیر هرگز بستگان و فرزندانتان روز قیامت سودی به حالتان نخواهند داشت میان شما جدایی می افکند و خدابند به آنچه انجام میدهید بیناست قد كانت لكم اسوة حسنة في إبراهیم والذين معه اذ قالوا اذ قالوا لقومهم انا برآء منكم و وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إلَّا قَوْلَ إبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إلاقوم ببراهم لبي أغفندلك وما أعملق لك من الله من شيء رن عك تكلنا وإلَ ك أنا بن وإلَك المصيب برای شما سرمشق خوبی در زندگی ابراهیم و کسانی که با او بودند وجود داشت در آن هنگامی که به قوم مشرک خود گفتند ما از شما و آنچه چه غیر از خدا می‌پرستید بیزاریم ما نسبت به شما کافریم و میان ما و شما عداوت و دشمنی همیشگی آشکار شده است تا آن زمان که به خدای یگانه ایمان بیاورید جز آن سخن ابراهیم که به پدرش گفت که برای تو آمرزش تلبی کنم و در عین حال در برابر خداوند برای تو مالک چیزی نیستم پروردگارا ما بر تو توکل کردیم و به سوی تو بازگشتیم و همه فرجام ها به سوی توست ربنا لا تجعلنا فتنة للذین كفروا و لنا ربنا این لکه انت العزیز الحکیم پروردگارا ما را مایه گمراهی کافران قرار مده و ما را ببخش ای پروردگار ما که تو عزیز و حکیمی لقد كان لكم فیهم اسوت حسنة لمن كان يرجو الله و اليوم و من ید الله هو الغني آری برای شما در زندگی آنها اصوه حسن بود برای کسانی که امید به خدا و روز قیامت دارند و هر کس سرپیچی کند به خیشتن ضرر زده است زیرا خداوند بینیاز و شایسته ستایش است از الله این یجعل بینکم و بین الذین عادیتون منهم موده والله قدیر والله غفور رحیم امید است خدا میان شما و کسانی از مشرکین که با شما دشمنی کردند از راه اسلام پیوند محبت برقرار کند خداوند تواناست وخداوند آمرزنده و مهربان است لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين خدا شما را از نیکی کردند و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در امر دین با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نهی نمی کند. چرا که خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد اینما ینهاکم الله عن الذين قاتلوكم في الدين و اخرجوكم و اخرجوكم من دیاركم و ظاهرو علی اخراجكم ان تولوهم و من یتولهم فالائک هم الظالمون شما را تنها از دوستی و رابطه با کسانی نهی می که در امر دین با شما پیکار کردند و شما را از خانه هایتان بیرون راندند. یا به بیرون راندن شما کمک کردند و هر کس با آنان رابطه دوستی داشته باشد ظالم و ستمگر است یا ایوها الذین <سؤال> آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بی فان عليمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اذا ای کسانی که ولا تمسكوا بعصم الكوافر ما ما حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم هنگامی که زنان با ایمان به عنوان هجرت نزد شما آیند آنها را آزمایش کنید خداوند به ایمانشان آگاه تر است هرگاه آنان را مؤمن یافتید آنها را به سوی کفار باز نگردانید نه آنها برای کفار حلالند و نه کفار برای آنها حلال و را همسران آنها برای ازدواج با این زنان پرداخت اند به آنان بپردازید و گناهی بر شما نیست که با آنها ازدواج کنید هرگاه مهرشان را به آنان بدهید و هرگز زنان کافر را در همسری خود نگه ندارید و اگر کسی از زنان شما کافر شد و به بلاد کفر فرار کرد حق دارید مهری را که پرداخت اید مطالبه کنید همان گونه که آنها حق دارند، مهر زنانشان را که از آنان جدا شده اند، از شما مطالبه کنند. این حکم خداوند است که در میان شما حکم می کند، و خداوند داناب و حکیم است. و این فاتکم من ازواجکم الکفار فعاقبتم. فعاقبتم فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقو واتقوا الله الذی انتم به مؤمنون و اگر بعضی از همسران شما از دستتان بروند و به سوی کفار بازگردند و شما در جنگی بر آنان پیروز شدید و قنایه می گرفتید به کسانی که همسرانشان سرانشان رفته اند، همانند مهری را که پرداخته اند برهید و از مخالفت خداوندی که همه به او ایمان دارید بپرهیزید یا ایوها نبی اذا جاء المؤمنات یبایعنک على. يبايعنك على ألا لا بالله شيئا ولا يسرق ولا يزني ولا يسرق ولا يزني ولا يقتلنا اولادهم ولا ياتين ولا ياتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم اي بر هنگامی که زنان مؤمن نزد تو آیند تا با تو بیعت کنند که چیزی را شریک خدا قرار ندهند دزدی و زنا نکنند فرزندان خود را نکشند تهمت و افتراعی پیش دست و پای خود نیاورند و در هیچ کار ای مخالفت فرمان تو نکنند با آنها بیعت کن و برای آنان از درگاه خداوند آمرزش بطلب که خداوند آمرزنده و مهربان است یا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قوما غضب الله علیهم قد یئسو من الاخرت كما یئس الکفار, الکفار من اصحاب القبور ای کسانی که ایمان آورده اید با قومی که خداوند آنان را مورد قذب قرار داده دوستی نکنید آنان از آخرت معیوسند همانگونه که کفار مدفون در قبرها معیوس می باشند